بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدایوندی بی‌اندازه مهربان نهایت باره خدای را همه چیزهایی که در آسمانها اند و در زمین با پاک یاد کنند اوست صاحب قدرت مونی و صاحب حکمت او که کافران اهل کتاب را برای نخستین حشریان خوستینه اجتماع از خانه‌هایشان بیرون آورد گمان نمی کردید که برایند و ایشان نیز گمان برده بودند که حسارهایشان آنها را از عذاب خداوند نگه می دارد اما عذاب خداوند از جایی که توقع نمی بردند و ایشان آمد و در دلهایشان دهشت افکند به هدی که خانه را با دستهای خودشان و با دستهای مسلمانان خراب می کردند پس ای اهل بسیرت پند بگیرید و اگر چنان نبود که خداوند بر ایشان جلای وطن را مقرر کرده بود ایشان را یقینا در همین جهان مجازات میکرد و در آخرت برایشان ایشان یقینا عذاب آتش است این مجازات به سبب است که ایشان با خدا و پیانبر او مخالفت کردند و هر کی با خدا مخالفت کند بگمان خداوند سخت مجازات کننده است ای مسلمانان آنچه از درخت نازوک خورما را پی کردید یا آن را ایستاده به حال خود آن گذاشتید بر اساس اجازه خداوند بود و برای این بود تا فاسقان را رسوا کند چیزی را که خداوند از ایشان یعنی بنی نظیر برای پیامبر خود به قیمت داد، برای دستیابی به آن نه عصبی را تاختید و نه اشتری را، مگر خداوند پیامبران خود را بر هر که بخواهد مسلط میگرداند، و خداوند بر همه چیز تواناست. با را خداوند از اهالی قریه ها به پیامبر خود به با غنیمت باز داد از آن خدا و پیامبر خیشاوندان و یتیمان و مسکینان و مسافران است، تا این سرمایه در میان سروتمندان شما دست به دست نشود آنچه را پیانبر برای شما میدهد بگیرید و از آنچه شما را منع می کند منصرف شوید و از خدا بترسید بگمان خداوند سخت مجازات کننده است این اموال برای فقیران مهاجرین نیست که از خانه ها و داراییشان بیرون کرده شدند در حالی که فضل و رضای خدا را می و خدا و اپیان برای او را یاری می دهند هم ایشانند راستگوه و نیز برای انصار آنانی که پیش از این مهاجران این سرزمین یعنی دارالهجرات و ایمان را برگزیدند یعنی پیش از مهاجران در مدینه جایگزین شده و به پیام پیامبر ایمان آوردند و هر کی را به سویشان هجرت کند دوست می‌دارند و با چیزی که به ایشان یعنی به مهاجران داده شده دلتنگی احساس نمی‌کنند و با وجود نیازمندی که دارند آنها را بر خود ترجیح دهند و کسانی که از حرس نفس خیش نجات یافته باشند هم ایشانند رستگار و برای کسانی نیز که بعد از ایشان آمدن می گویند پروردگارا ما را و برادران ما آنهایی را که در ایمان بر ما پیش دستی کردند بیامرز و در دلهای ما نسبت به کسانی که ایمان آوردند کینه را راه مدی پروردگارا واکن تو را اوف و مهربان هستی. آیا منافقان را ندیدی که به برادران خیش از کافران اهل کتاب می گویند قسم است هرگاه بیرون رانده شوید ما نیز با شما بیرون می شوید. و در معامله با شما هیچ کسی را هرگز فرمان نخواهیم برد و اگر با شما جنگی صورت گیرد حتما شما را کمک خواهیم کرد و خداوند گواهی می دهد که ایشان واقعا دروگو هد. با اگر بیرون کرده شوند با ایشان بیرون نمی روند اگر با ایشان جنگ شود هرگز کمکشان نمی کنند و اگر ایشان را کمک هم بکنند، حتما پشت به کارزار کرده و باز هرگز دادرس نمی شوند بیگمان ترس شما در دلهای ایشان قوی تر از ترس خود است. این سبب است که ایشان قوم را هم هرگز با شما یک جایی جنگ کردن نمی توانند جز از داخل آبادی های مستحکم یا از پشت دیوارها، جنگشان در میان خودشان شدید است ظاهرا ایشان را یک پاچه و همدست می پنداری اما هایشان پراغنده است و این خاطر است که ایشان مردم بیخیره لند مانند کسانی که کمی پیش از ایشان بودن آقبت بد کار خود را چشیدند و برای ایشان در آخرت عذاب دردناکیست درست مانند شیطان هنگامی که با انسان گفت کافر شد چون کافر شد گفت بیگمان من از تو بیزارم من از خدای پروردگار جهانیان میترسند پس انجام کار آنها چنین شد که هر دو برای همیشه در آتش دوزخ بسر برند و این است جزای ستم ستمگاران ای مؤمنون از خدا بترسید و باید هر کسی بنگرد که برای فردا چی فرستاده است از خدا بترسید حقا که خداوند به آنچی می کنید آگاست و مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز ایشان را به خودفراموشی گرفتار کرد هم ایشانند بدکاره اهل دوزخ و اهل بهشت هرگز با هم مساوی نیستند اهل بهشت هم ایشانند راستگار. اگر این قرآن را بر کوه نازل می کردیم بگمان آن را از ترس خدا در تزرع و پارپار پار شده می دیدی. و این مثال ها را برای مردم می تا باشد که بیندیشند اوست خداوندی که جز او معبودی نیست دانای نهان و آشکار و اوست بخشایم و مهربان اوست خداوندی که جز او معبودی نیست پادشاه، نهایت پاک، سالم از هر عید اماندهنده، نگهبان، صاحب قدرت منی. صاحب عزت و با در نهایت بزرگواری منظه است از آنچه با او شریک می آورند او خداییست آفریننده پدید آورنده، نگارنده اشکال و رنگها صاحب نیکوترین نامها و صفات آنچه در آسمانها و در زمین است او را با, با کیاد یاد وهم صاحب قدرة مني وبو